گرامیان درود بر شما فایل آوایی 8 از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 106 عنوان فیزیولوژی تبلیغ، تحکیم و جلوگیری از تزلزل ایمان مؤمنین از بابت درستی عقایدشان مطمئن هستند و داشتن ایمان به باورهایشان را نه تنها برای سعادت در زندگی دنیوی و اخروی مفید می‌دانند بلکه آن را لازم می‌شمارند بنابر این معمولاً تبلیغ ایمانشان را نیز به حال همه مردم مفید و یا لازم محسوب می‌کنند حتی ممکن است در دینشان به انجام تبلیغ توصیه شده و برای این کار پاداش اخروی نیز وعده داده شده باشد گذشته از اینها اجرای بعضی احکام اجتماعی دینی وقتی ممکن می شود که به صورت قانون درآید و این مستلزم آن است که اکثریت مردم یا نسبت قابل توجهی از آنها مؤمن به آن دین باشند تا در وضع قوانین دینی مانعی پیش نیاید مخصوصا درباره مورد اخیر علاوه بر تبلیغ ایمان تحکیم ایمان مؤمنین نیز لازم است تا نسبت به وضع قوانین دینی حساسیت و علاقه بیشتری نشان دهند کسی که فقط عضو یک جامعه دینی است ممکن است حساسیت چندانی نسبت به دینی بودن یا نبودن قوانین نداشته باشد و حتی بسیاری از احکام و دستورات شخصی دینش را نیز اجرا نکند اما اگر هر روز باورهای دینی به یادش بیاید و پیوسته نسبت به عاقبتش در جهان دیگر به او نهیب زده شود ای بسا نسبت به اجرای ریز و درشت احکام دینش هرچه بیشتر گردد تا هرچه بیشتر به سعادت وعده داده شده در دینش نزدیک شود حالا دیگر طرفدار وضع قوانین دینی نیز میگردد تا هرچه بیشتر امکان سعادت دنیوی و اخربیش، فراهم گردند اینها موجب می شود مؤمنین نسبت به تبلیغ ایمانشان و تحکیم ایمان همکیشانشان و نیز جلوگیری از تزلزل ایمان آنها احساس وظیفه نمایند انسانهای مؤمن در طول تاریخ شاید در پی آزمون و خطا و شاید به صورت غریزی به روشهای کارآمدی برای تبلیغ دین و تحکیم ایمان دست یافتند این روشها به واسطه خصوصیات روانی انسانها تأثیرگذاری قابل توجهی دارند و فارغ از اینکه مضمون ایمان و عقیده تبلیغ و تلقین شده چیست و چقدر درست یا غلط است اثر خود را بر مردم می‌گذارند و انتظار مبلغین را برآورده می‌کنند در واقع تأثیرگذاری این روش ها ربط چندانی به منطقی و درست بودن عقاید تبلیغ شده ندارد بلکه نسبت روش به کار رفته با خصوصیات روانشناختی مخاطب است که موجب تاثیرگذاری این روش هاست ها احکامی که در ادیان وجود دارند نیز ممکن است به این تبلیغ، تحکیم و جلوگیری از تزلزل ایمان کمک کنند در ادامه به بررسی این روشها، و علل فیزیولوژیک تاثیرگذاری آنها میپردازی عنوان تسخیر نظامی با توجه به آنچه تاکنون گفتیم می میتوان متوجه شد که تسخیر نظامی یک سرزمین مهمترین تمهید برای تبلیغ دین است گفتیم بهترین زمان برای نشاندن ایمان در ذهن انسانها زمانی است که ما آماده باور وجود یک ذهن هستیم که آگاه به اندیشه های ما و مراقب افکار ماست و دارای قدرت بر زندگی دنیا و پس از مرگ ماست گفتیم که به واسطه شکل گیری نظریه ذهن در کودکی و اعتمادی که در این سن به بزرگسالان داریم این زمان بیش از همه زمانها آماده پذیرش این باور هستیم تسخیر نظامی یک سرزمین و حذف ایمان و خدایان قبلی و اجبار در آموزش ایمان جدید و تلقین خدای جدید در ذهن کودکان موثرترین روش تلقین آن ایمان است چنانکه گفتیم از اینجا به بعد مغزهای کهن ما جلوی نقد باورهای مرتبط با آن خدای مقیم در ذهنمان را میگیرند و تقریباً فارغ از محتوای این باورها و منطقی یا غیر منطقی بودنشان و تناقضاتشان با اطلاعات و دانش ما عمده احکام و اطلاعات وابسته به آن خدا و دینش را میپذیریم و ساقه مغز و دستگاه لیمبیک اجازه قدم گذاشتن ما در مسیر چون و چرا درباره آنها را نمیدهند. چیرگی نظامی بر مردم و تسلط بر آموزش و پرورش آنها گروه قاهر را قادر می کند تا لیست بزرگی از باورها و مقدسات را وارد محدوده غیر قابل نقد ذهن مردم مقبور نمایند در قرون گذشته آموزش و پرورش تقریبا تماما در دست مدارس دینی بود و مواد درسی غیر دینی هم در مدارس دینی و لابلای دروس دینی تدریس میشد. عنوان سرکوب هر نظر مخالف در سال 1951 سولمان اش از پیشروان روانشناسی اجتماعی تحقیقی در زمینه همرنگی با جمع انجام داد او افراد تحت مطالعه را با همدستان خود که وانمود می کردن شرکت کنندگان بیطرف هستند در یک جا جمع می کرد و از آنها می خواست بگویند خط مورد نظرش با کدام یک از خط دیگر هم اندازه است؟ ابتدا هم دستانش یک پاسخ غلط یکسان می‌دادند و نهایتا نظر داوطلب اصلی خواسته می‌شد. در سی و دو درصد موارد فرد مورد آزمایش در راستای همرنگی با جمع جواب غلط می‌داد. اش متوجه شد اگر فقط یک همده است در کنار فرد شرکت کننده در آزمایش قرار دهد، احتمال همرنگی با آن یک نفر 3 درصد است. احتمال همرنگی با دو نفر که هر دو یک جواب غلط یکسان می دهند سیزده درصد و احتمال همرنگی با سه نفر و بیشتر همان سی و دو درصد باقی می مانند. گویا رأی سه نفر از دید ما انسان ها حکم اتفاق آرا را دارد و افزایش تعداد افراد هم معنای هم را تغییر نمی دهد. اش مشاهده کرد اگر در بین افراد هم تنها یک نفر مخالف را اضافه کند که جواب دیگری بدهد میزان همرنگی شرکت کنندگان با اکثریت از زیاد درصد به پنج درصد سقوط میکند در مواردی که از افراد شرکت کننده خواسته شد جوابشان را نه در حضور دیگران بلکه به طور خصوصی اعلام کنند میزان همرنگی کاهش یافت اما همچنان وجود داشت گروه شاهد نیز وجود داشت که در آن شرکت کنندگان هم دستش پاسخ غلط نمیدادند در این گروه تنها یک درصد از شرکت کنندگان واقعی پاسخ غلط دادند در سالهای بعد تصویربرداری برداری FMI در مغز کسانی که این چنین تحت فشار جمع قرار می نشان از تغییراتی در نواهی مختلف مغز به خصوص شبکه پاریتال داشت تفسیر چنین تغییراتی این معنا را داشت که درک و فاهمه اشخاص تحت فشار توسط نظراتی که از سوی جمع میرسد و یا قضاوتی که توسط جمع صورت میگیرد با آن نظرات یا قضاوتها مطابق میگردد. یعنی اینطور نیست که فقط جهت همرنگی با جماعت اظهار نظری مطابق با اظهار نظر جماعت داشته باشند و این کار را مزورانه انجام دهند بلکه گاهی همان را می‌بینند که جماعت می‌بینند و همان احساسی را نسبت به یک چیز دارند که جماعت ابراز می‌کنند مثلا اگر جماعت بگویند فلان مرد خدا چهرهی نورانی دارد اینها نیز چهره آن شخص را نورانی و منور به انوار الهی می بینند. اگر جماعت بگویند حیبت ملکوتی فلان زیارتگاه ما را گرفت اینها نیز در آن زیارتگاه دچار احساس بیجه ای می شود. اگر جماعت برای ماجرایی گریه کنند اینها نیز آن ماجرا را اندوهناک می آبند. نشان داده شده اگر جماعت معیار خاصی را برای زیبایی تعریف کنند و کسی را زیبا معرفی کنند ترشح دوپامین در بنترال استریاتوم افراد تحت تأثیر جماعت با دیدن چهره آن شخص افزایش می‌یابد افراد وقتی به جنس مخالف نگاه کنند و او را جذاب بیابند ترشح دوپامین در بنترال استریاتوم آنها افزایش می‌یابد این میتواند شیوه تأثیر مد روز و یا تبلیغات را در زیبا دیده شدن افرادی که مطابق مد عمل می کنند و زیبا دیده شدن سلبریتیها نشان دهد با توجه به آنچه گفته شد میتوان فهمید چرا موافق نشان دادن همه مردم با اعتقادات دینی و جلوگیری از ابراز هرگونه مخالفت و نقد عقاید دینی حائز اهمیت است اینکه فقط مدافعین عقاید یک دین و مذهب خاص بتوانند نظرشان را بگویند و هیچ مخالفی نظر ندهد و نقدی نکند این تصور را به وجود آورد که جماعت همگی با مزامین آن دین موافقند و اتفاق نظر ظاهری جماعت نیز میتواند موجب همرنگی و پذیرش این عقاید گردد همچنین سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و بحشت موجب می شود مبلغین دینی متکلم وحده باشند و عقایدشان پیش از هر عقیده دیگری به گوش مردم برسد. اولین عقیدهی که به گوش ما برسد بیشترین شانس را دارد تا مورد پذیرش ما قرار گیرد و این فقط مربوط به سن و است. یعنی اینطور نیست که فقط در کودکی به راحتی هر حرفی را باور کنیم. در بزرگسالی نیز در هر ای، هر سخنی که زودتر به ما گفته شود بیشترین شانس را دارد تا از سوی ما پذیرفته شود. دانیل گیلبرت روانشناس اجتماعی در مقاله‌ای در سال 1991 اظهار می‌کند که ما از نظر پذیرش گزاره‌ها می‌توانیم دو روی کرد داشته باشیم. یکی رویکرد دکارتی و دیگری رویکرد اسپینوزایی در رویکرد دکارتی پیش از پذیرش گزاره خود را بر سر دوراهی میبینیم یعنی نه میپذیریم و نه رد میکنیم در رویکرد اسپینوزایی اول گزاره را میپذیریم و سپس ممکن است با صرف وقت و انرژی آن را تحلیل کنیم و شاید رد کنیم. دانیل گیلبرت عقیده دارد ما در اکثر مواقع اسپینوزایی عمل میکنیم یعنی اول میپذیریم و با توجه به اینکه فرایند تحلیل و رد کردن گزاره ها انرژی بر و دشوار است ممکن است در بسیاری موارد اصلا وارد مسیر تحلیل نشویم به عبارتی ما دچار پذیرش ابتدایی گزاره ها می میشویم جامعه که از نظر دینی تک باشد و همه رسانه ها و آموزش و پرورش در اختیار دین رسمی قرار گیرد و مخالفان و نقادان از مخالفت و نقد واهمه داشته باشند می گزاره‌های دینی را که احتمالا اولین گزاره‌هایی هستند که هر کسی از کودکی با آنها آشنا می شود به مردم بقبولاند و پس از مدت کوتاهی این گزاره ها از گزاره‌های پذیرفته شده به عقاید دینی و ایمانی و مقدس افراد تبدیل شوند بدون آنکه هیچگاه در معرض تردید و تحلیل قرار گیرند با فرض درست بودن گفته‌های دنیل گیلبرت باید از کودکی و در زمان مدرسه پیش از اینکه اشخاص در معرض گزاره‌های خرافی و شبهه علم و بی‌پایه و اساس قرار گیرند نسبت به این قبیل گزاره ها واکسینه شوند یعنی به این معنا و مفهوم علوم به کودکان آموزش داده شود که بتوانند در برخورد با گزاره های خرافی و شبه علم آنها را با آنچه آموخته اند محک بزنند و این محک زدن به عادت آنها تبدیل گردد وگرنه بعد از پذیرش اولیه گزاره های خرافی و شبه علم و تبديل آنها به نظر شخصی و عقیده قلبی نمیتوان به راحتی آنها را از ذهن زدود و همیشه چیزی از آنها در ذهن میماند و روشنگری در زمانهای بعدی چندان به کار نمی آید افرادی که به عقیده‌ای خرافی و یا شبه علم باور دارند در گروههای هم عقیده خود جذب می شوند و از بحث با مخالفان یا پرهیز می کنند و یا این بحث ها موجب می شود هرچه بیشتر در جمع همفکران خود غرق شوند و تایید عقاید خود را از اجماعی که در گروه های همفکرشان وجود دارد بگیرند عنوان مذموم شمردن کنجکاوی آیا کنجکاوی یک نیروی قریزی و مهم در ما انسان ها است اگر این است چرا ما نسبت به دانستن خیلی از مطالب کنجکاو نیستیم من نمیدانم جمعیت تیرانا پایتخت کشور آلبانی چقدر است اگر هم مجله‌ای در کنار دست من باشد که جمعیت تیرانا را نوشته باشد میلی به خواندن آن مجله و دانستن جمعیت تیرانا نشان نمیدهم. چرا در مورد بعضی چیزها کنجکاویم و در مورد بعضی چیزها نه تحقیقات نشان می‌دهد هنگامی که مطلبی را نصف و نیمه می‌دانیم و یا حرفی را نصف و نیمه می‌شنویم و یا تصویری را ناکامل و یا ناواضح بینیم کنجکاوی ما برانگیخته می‌شود در این حالت نواحی ای آی یا آنتریور انسولا و ای یا آنتریور سینگولت کورتکس فعال می‌شوند این نواهی وقتی دلخور، ناراحت و بیقرار هستیم نیز فعال می شود. یعنی اطلاعات ناقص ما را ناراحت و بیقرار می کند. از طرفی وقتی اطلاعات ما کامل می شود یا تصویری که ناوازه یا ناکامل می دیدیم واضح و کامل می گردد یا به عبارتی کنجکاوی ما با دریافت اطلاعات ارضا می شود هسته آکومبنس، پوتامن و کودات چپ فعال می‌شوند که همگی با پاداش و لذت در ارتباط هستند. هسته آکومبنس مرکز پاداش و لذت مغز است که هنگام خوردن غذاهای خوشمزه، فعالیت جنسی و مصرف مواد مخدر هم فعال می‌شود و فعالیت این مراکز محصول افزایش ترشح دوپامین در این کانون هاست. در زمان کنجکاوی اتفاق سومی هم میافتد و آن اینکه فعالیت هیپوکامپوس که مرکزی مهم برای فرایند به خاطر سپاری است نیز افزایش می‌یابد نشان داده شده که ما چیزهایی را که در زمان کنجکاوی می‌بینیم و می‌شنویم بهتر به خاطر می‌آوریم مجموعه این اطلاعات به ما می‌گویند که کنجکاوی کافین امری مهم و حیاتی برای ادامه نسل ما بوده باشد که این همه ساز و کار مغزی برایش می شود. البته بعید است که تکامل ساز و کنجکاوی در مغز هوموساپینز برای کشف حقایق انتزاعی و فلسفی پیچیده بوده باشد. احتمالا این خصوصیت صرفا برای موفقیت ما در حفظ حیات و یافتن راههای زنده ماندن و کشف جایگاه خودمان و دیگران در گروه‌هایی که در آن زندگی می‌کردیم یعنی کاری که اکنون از آن به فضولی یاد می‌کنیم و این قبیل موارد توسعه یافته است ولی به هر حال اكنون می‌تواند برای یافتن پاسخ در زمینه‌های دیگر نیز ما را به حرکت وادارد و پاسخ‌های فلسفی و علمی نیز ما را غرق لذت کند و تصویر هرچه کاملتر و واضحتری از هستی برای من جذاب و خواستنی باشد اما نکته مهم درباره این تمایل این است که زمانی در ما به وجود می که ابتدا اطلاعاتی ناقص داشته باشیم و تصویر یا مطلب برای من وضوح کامل نداشته باشد. یعنی شکاف اطلاعاتی یا عدم قطعیت ادراکی است که ما را کلافه می کند و برای پر کردن آن شکاف اطلاعاتی به حرکت در میآییم و ای بسا به دنبال لذت و جایزه حاصل از تکمیل اطلاعات هم باشیم. در مجموع نگاه کنجکاوانه لذت بیشتر و حافظه بهتری برای ما به ارمغان می آورد و ممکن است ما را به اعتیاد لذت جویانه کسب اطلاعات در موارد مختلف دچار کند از فضولی در کار اطرافیان گرفته تا کسب علم و دانش بسته به اینکه در کدام زمینه اطلاعات نصف و ای داشته باشیم و یا در کدام زمینه لذت جویی بیشتری کرده باشیم ما درباره مقولاتی که در آنها تخصص تمام و کمال و احساس دانایی کامل داشته باشیم و نیز مقولاتی که از آنها هیچ نمیدانیم دچار کنجکاوی نمی‌شوند. در اسطوره‌های ادیان کنجکاوی ناپسند شمرده شده و کنجکاوان به بلایای گوناگون گرفتار می‌شود. زئوس زن زیبا و کاملی خلق کرد به نام پاندورا که تنها عیبش کنجکاوی بود. هرمس به پاندورا جعبهای طلایی داد و از او خواست که هرگز آن را نگشاید. او که نمی توانست کنجکاویش را کنترل کند، جعبه را باز کرد و شیاطین قحطی، طمع رنج و اندوه بیرون آمدند. در این داستان کنجکاوی به عنوان ریشه بدبختی های انسان بیان شده. سمله از زئوس خواست که خودش را با همان حیبت خداییش به او نشان دهد زئوس که پیشتر قول داده بود یک آرزوی سمله را برآورده کند، ناچار چنین کرد و درخشش برق او باعث نابودی سمله شد. آدم و هوا هم درباره عاقبت خوردن میوه‌ای که از آن منع شده بودند، کنجکاوی کردند و از بهشت رانده شدند و بدبختی نوع انسان آغاز شد. موسی درباره حکمت کارهای خضر کنجکاوی کرد و خیز از ادامه همراهی موسی با او امتناع کرد. علاوه بر این که ادیان ایمان را تشویق می کنند، مؤمنین را از کنجکاوی درباره حکمت اعمال خدایانشان برحضر می دارند. البته مؤمنین کنجکاو و فیلسوف مشرب نیز بودند که در اصول عقیدتی دین و ایمانشان و حکمتی که در پس اعمال و احکام خدایشان است به کنجکاوی پرداخته و در نهایت از دینشان هم برنگشتهاند و هر جا نتایج اندیشه آنها با اصول دین و عقایدشان در تزاد افتاده، آنها طرف همان عقاید دینیشان را گرفتهاند و از دایره دین خارج نشدهاند. اما همین که دیدگاه های بعضی مؤمنین پس از کنجکاوی و اندیشه با دیدگاه های بدنه اصلی روحانیت دینشان زاویه پیدا کرده و یا گاهی باعث شده به کلی دینشان را رها کنند موجب گشته تا فلسفه و اندیشه کنجکاوانه درباره اصول و فروع اقایت دینی مورد مخالفت بسیاری از روحانیون ادیان باشد و آنها مردم را از هر گونه کنجکاوی در این زمینه ها برحضر دارند و عقل آدمی را برای بررسی دینشان ناقص و ناکافی به شمارند و برای پذیرش بیچون و چرای احکام و ارزشهای دینشان فزیلت بسیار قائل شوند اینکه کسی تا آنجا درباره حکمت اعمال و رفتار خدایان کنجکاوی کند که پایه‌های ایمانش سست گردد مذموم شمرده می‌شود و گفتن اینکه ما از چرای کارهای آنها سر نمی آوریم و درست نیست درباره این امور کنجا کنیم یک ایده تبلیغ شده و یک موضع تحسین شده در عدیان است و کمک می کند مؤمنین به هر دینی هیچ اشکالی در اعمال و رفتار خدایان و قدیسین نبینند و هیچ امر غیر اقلانی و یا غیر اخلاقی در احکام دینشان نیابند و اصلا هر بحث و گفتگویی در این مقولات مزموم و نادرست شمرده شود و لذا افرادی که این مباحث به ذهنشان خطور میکند از مطرح کردن آن شرم داشته باشند انجام اعمالی که از دید عموم مردم ضد ارزش یا رزیله باشد میتواند موجب ترد اجتماعی گردد ترس از ترد اجتماعی یکی از نیروهای مهم نیست که سمت و سوی اعمال و رفتار ما را تعیین می‌کند ما گونهی هوموساپینس در بسیاری از مواقع از تجزیه و تحلیل دقیق اعمال و رفتار و افکار خود نیست که میفهمیم کار درست یا کار غلط را انجام میدهیم یا عقیده درست یا غلط داریم بلکه از پذیرفته شدن یا ترد شدن خود است که نتیجه میگیریم. کارمان خوب بوده یا بد و طرز فکرمان درست بوده یا غلط. ترد شدن از جمع میتواند سیستم لیمبیک مغز ما را آشفته و پذیرفته شدن در جمع میتواند این سیستم را آرام سازد. پذیرفته شدن در یک گروه یا جامعه مذهبی ما را متقاعد میکند که همه چیز درست و خوب است و نیازی به بازنگری در افکار و اعمال ما نداریم و این تا زمانی که گروه مذهبی مان ما را ترد نکرده ادامه دارد. حتی همان یک گروه میتواند آرامش و اطمینان کافی را در ما ایجاد کند و نیازی به پذیرفته شدن در گروههای دیگر نداشته باشیم. ما میتوانیم در یک دنیای ایزوله اینچنینی تا آخر عمر بسر بریم و هیچ الزام و فشاری برای صرف انرژی جهت نقد باورهای من حس نکنیم و البته بازیچه سرکرده های گروه هایی که در آنها عضو هستیم هم باشیم. پس کنجکاوی در فلسفی دین و حکمت احکام دین باید امرین مزموم باشد مگر اینکه در چارچوب خود متون دین صورت گیرد. یعنی پاسخ هر سؤال را از همان متون مقدس جویا شویم. اگر پاسخی وجود داشت بپذیریم وگرنه همه چیز را بی و چرا قبول کنیم و تلاش نکنیم با اندیشه خودمان اصول عقاید و حکمت احکام و اخلاقی بودن یا نبودن دستورات دینمان را محک بزنیم به بحثهای فکری که در چارچوب متون دینی صورت میگیرد کلام میگویند. بحث‌ها و کنجکاوی‌های کلامی در ادیان مذموم نیستند و بین روحانیون ادیان رواج دارند فرض وجود زندگی پس از مرگ کمک زیادی به جلوگیری از کنجکاوی میکند چرا که اگر قرار بود همه نتایج احکام و روشها و تصمیمات الهی و سعادت وعده داده شده در ادیان در زندگی دنیوی دیده شود ولی دیده نمیشد، شد سوالات شکاکانه ادامه می آفد. اما فرز زندگی پس از مرگ می تواند حکمت این دستورات و تصمیمات الهی را به زندگی بعدی مربوط بداند. عنوان یاداوری خدایان نامرئی معمولا خدایان ادیان ذاتهای نادیدنی هستند و هر چیز نادیدنی در معرض فراموشی است. زندگی و مسائل روزمره ظرفیت ذهن ما را به خود اختصاص می دهند. موضوعاتی که کمتر به آنها فکر می کنیم و اشخاصی که نمی بینیم و یا چیزی از آنها نمی شنابیم کم کم از یادمان می روند و آنها را در محاسباتمان لحاظ نمی کنیم. خدایان نادیدنی هم اگر پیوسته یادآوری نشوند، کم کم از محاسبات روزمره ما حذف می شوند. هرچند وجودشان را منکر نکشید. دینداران به انهای مختلف به یادآوری خدایشان برای خودشان و برای دیگران میپردازند. از روش های میتوان به اجرای احکام و مناسک روزمره دینی مثل دعاها و نمازها و شرکت در اجتماعات دینی و مذهبی نام برد. بناهای دینی مثل معابد و مقابر مخصوصا اگر بزرگ و باشکوه باشند علاوه بر یادآوری وجود خدایان به مؤمنین چنین الغا می کنند که با خدایی بزرگتر و قدرتمند تر از خودشان طرف هستند. ناقوس‌ها و ازان و هر صدا و ندای مشابه میدان اثر این یادآوری را وسعت می‌دهد. روش‌های این یاداوری ها بسیار متعدد هستند و از اطاله کلام در این باب پرهیز می کنند. گرامیان، همینجا در صفحه 117 فایل آوایی هشتم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبرید تا درودی دیگر بدرود